ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دا که من می روم الله و معک تویان گوهر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو و ودحاصل تسبیح ملک در خلوص منتر هست شکی تجربه کن کس ایار زر خالص نشناست چون محک گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم وعده از حد بشد و ما ندو دیدیم و نیک به گوشا پسته خندان و شکر ریزی کن خلق را از دهن خیش مای انداز به شک چرخ بر همزنمر غیر مرادم گردد من نعانم که زبونی کشم از چرخ فلک چون بر حافظ خیشش نگذاری باری ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک